قصه های هزار یک شب شب شانزده هم حکایت بانو باد و بزرگترین دختران پیش آمده زمین ببوسید و گفت من طرفه حکایتی دارم و آن این است که این دو سگ خواهران پدری منند و من مهتر خواهرانم چون پدر ما به مرد پنج هزار دینار زر به میراث گذاشت خواهران من جهیز گرفته هر کدام به شوهری رفتند پس از چندی شوهران نقدینه ایشان بستادند و کالا خریده با زنان به بازرگانی برفتند. چهار سال به قربتندر به سر بردند و سرمایه تلف کردند. شوهران از ایشان دست برداشته برفتند و ایشان به صورت دریوزگان پیش من آمدند از بس که بی سامان بودند من به زحمت ایشان را بشناختم و از حالت ایشان باز پرسیدم. گفتند قصه باز گفتن سودی ندارد. سرنوشت این بوده است. من ایشان را به گرمابه فرستاده جامه به پوشاندم و ایشان را به بزرگی برگزیدم. گفتم همه مال از آن من و شماست. پس همه روزه در نیکی و احسان به ایشان میافزودم تا سالی بر این بگذشت ایشان از مال من مالی اندوخته گفتند که ما را شوی باید گفتم مرد خوب به جهانندر نایاب است شما شوهر گرفتید و آزمودید دیگر بار شوی کردن سودی ندارد ایشان سخن نپذیرفتند من از مال خیش جهیز گرفته ایشان را شوهر بدادم هر کدام با شوهر برفتند پس از چندی شوهرها ایشان را فریب داده آنچه که داشتند بستودند و ایشان را به سفر برده در میان راه از ایشان دست برداشته رفتند ایشان بهرهنه بازگشته پیش من آمدند و عذر خواستند پیمان بستند که دیگر نام شوهر به زبان نیاورند من عذر پذیرفته بیش از پیش به ایشان احسان میکردم تا اینکه سالی بر این بگذشت و من کالای فزون خریده به قصد بسره به کشتی نشستم و خانه به ایشان سپردم ایشان گفتند ما طاقت جدایتو نداریم من ایشان را نیز با خود به کشتی نشانده شبان روز همی رفتیم تا اینکه ناخدا قفلت کرد و کشتی از راه به شد پس از چند روز شهری پدید گشت از ناخدا پرسیدیم که این کدام شهر است گفت شناسم و تمامی عمر در دریا کشتی راندهام و هرگز این شهر را ندیده بودم اکنون که به اینجا آمدهایم شما کالای خیش به شهر برده بفروشید اگر خریدار نباشد دو روز براسود توشه بگیرید پس از آن کشتی به سوی مقصد برانیم پس ناخدا برخاسته به شهر رفت در حال باز گردیده گفت برخیزید و به شهر آوید و قدرت خدای تعالی ببینید آنگاه ما به شهر رفتیم دیدیم که مردم شهر همگی سنگ سیاه شده زر و سیم و دیگر کالای مردم جابجا مانده است ما را عجب آمد همه از یکدیگر جدا گشته از بحر تفرج شهر به کوی و برزن برفتیم و من به سوی قصر ملک بشتافتم در آنجا دیدم که همه ظروف از زر و سیم است و ملک را به فراز تخت دیدم که وزرا و خادمان و سپاهیان به پیش او ایستاده همگی سنگ بودند و گوهرهای درخشنده بر آن تخت بود که چون ستارگان پرتو همی دادند پس به هرم سرای رفته ملکه را دیدم که تاج مکلل و عقد مرسه و قلاده گوهرنشان و های ذرین او به حال خود بودند ولی ملکه سنگی سیاه شده بود در آنجا دری یافتم از در به درون شدم و از نردبانی که در آنجا بود فراز رفته ایوانی دیدم که فرشهای حریر و استبرق به آنجا گسترده بودند و تختی مرسع بادر و گوهر در صدر ایوان دیدم که گوهرهای تر از ماه تابان بر آن تخت بود پس از آن به جای دیگر رفته عجایب بسیار دیدم که از دیدن آنها به دهشت اندر شدم و حیران همی گشتم تا شب درآمد خواستم از قصر به راه نشناختم در مکانی که تخت بران بود بخفتم چون نیمی از شب برفت آواز تلاوت قرآن شنیدم در حال برخواسته به دان سو رفتم عبادتگاهی یافتم که قندیل آویخته و شمها سوخته و سجاده گسترده اند و جوانی نیکو شمایل در آنجا به تلاوت مشغول است مرا از آن جوان عجب آمد که چگونه مردم شهر بجز این جوان همگی سنگ سیاهند. پس نزدیک آن جوان رفته سلامش دادم رد سلام کرد گفتم پرسشی از تو خواهم کرد و بدین قرآن که همیخانی خانی سوگندت می دهم که به راستی پاسخته آن جوان تبسمی کرد کرده گفت نخوست تو بازگو که بدین مقام چگونه آمدی من ماجرای خیش بیان کردم و از احوال مردم شهر پرسیدم مصحف برهم نهاد و مرا پیش خود خانده بنشاند. دیدم که آن پسر در نکویی چنان است که شاعر گفته پری چهره بتی ایار و دلبر نگار سر قد ماه منظر اگر آذر چطور دانست کردن درود از جان من بر جان آذر اگر بتگر چطور بت بر نگارت مری زادان خجست دست بتگر من تیر محبت او خورده دل به مهرش سپردم و از حکایت مردم شهر باز پرسیدم گفت پدر من ملک شهر بود و او همان است که به فراز تخت سنگ شده و مادرم همان بود که به هرم در بدیدی پدر و مادرم و مردم شهر ستایش پروردگار نکردند و آتش همی پرستیدند و به ماه و هور سوگند یاد میکردند ولیکن در خانه ما پیرزنی خداپرست بود که دین خود آشکار نمیکرد و پدرم به امانت و پاک دامنی او اعتماد تمام داشت و مرا به دوست سپرد که تربیت داده احکام دین مجوسم بیاموزد او احکام دین اسلام و تلاوت قرآن به من بیاموخت من نیز دین خود پوشیده می داشتم تا اینکه مردم در کفر تقیان کردند روزی از حاتفی شنیدم که گفت ای مردمان این شهر از پرستش آتش بازگردید و خدا را پرستید مردم ترسیدند و به پیش ملک آمدند پدرم گفت از آواز حاتف نترسید و از دین پدران برنگردید. مردمان به سخن ملک اعتماد کردند. سالی به همین منوال آتش پرستیدند. چون سال دوم برآمد، همان آواز نخستین برشنیدند و از کردار ناسواب خیش باز نگشتند. سال سیوم باز آواز بشنیدند. از کفر باز نگشتند خشم خدای تعالی ایشان را فرو گرفت همه سنگ سیاه شدند و از آن روزی که این حادثه روی داده من به نماز و روزه و تلاوت عمر میگذارم و از تنهایی بس ملولم من گفتم در بقداد حکیمان و دانشمندان هستند اگر تو به روی علم بیاندوزی و حکمت بیاموزی و من نیز از کنیزکان تو خواهم بود بدان که من هم بزرگ تبار و خداوند غلام و کنیزم و کشتی کشتی کالای قیمتی با خود آوردم غذا کشتی ما بدین سوی کشانید تا من و تو یکدیگر را ببینیم پس من او را به بقداد ترقیب کردم او خواهش من بپذیرفت چون قصه به رسید بامداد شد و شهرزاد لابد داستان فرو است